ایران ویج. بازنگری در تاریخ قلم میانی ببینید ما در اسطوره جمشید که مادم با اردن نصفش کردن دقیقا داره توضیح میده تسلط میانرودانی و قرب ایران تأثیر تسلط مثلا شما میدهد حتی نام های, می های میانرودانی رو خودشون میذاشتن خدایان میانرودانی اینو میپرسیدن ولی در شما هرگز هم همچیزی شما نمیبینید که حتی یک دونه حتی یک دونه نام غیر آریای باش. در نام شاهان نام شهرها نام روستاها دوستان توی بشار اختشاش میشه ذهنشون برای اینه که اینا ایمان دارن به این فرضیه موجود اینا از قبل این تو ذهنشون بوده آسی میانو اینا اصلا نیازی هم به اثباتش ندارن جنیدی میگه کزازی میگه تاله میگه گرشمن میگه کریستینسن میگه اینا میگن همه میگن همه میگن اصلا مشکلی ندارن تاله با کسی بحث نکردن در این باره تا به هم رسیدن گفتن آسیه میانه گفتن دمت گرمو رفتن جلو اصلا یعنی تو اینجا یعنی تو ایران تا به حال کسی شبهه‌ای در این موضوع مطرح نکرده بختی نشد اصلا دکتر در در جانشاه درخشانی بود که به کلی مهرمون کردن از کنار تا مرد متن مسعودی من میخوام بگم میگن میگه ایرانیان ایران را به ایرج گویند یعنی به نسبت میدن ما این در جاهای دیگه داشتیم آرگیوا قشون با, با پاچن آرگوس نسبت و میان ایرانیان خلاق نیست نه خلاق نیست که همه از فرزندان ایرش بودن نیخوش از یک تبار میونه این خیلی جالبه نیخوشون چند تا دستانه میدونن بعضی کسان نیز به این رفته که دیگر اقوام ایران و مردم بلایت اهواز از فرزندان ایرام این تا اینجا و میان ایرانیان خلاق نیست که همگیشون از فرزندان کیون به نام ایزد یکتا عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان گرامی و عزیزان علاقمند از رادیو اینترنتی صدای امید در خدمت شما هستیم و در قسمت 26 برنامه ایران ویج. ما همچنان های داغمون ادامه داره در مورد مکانیابی ایران و رود دایتی مباحث سه برنامه گذشته ما عمدتا روی تبادل نظر در مورد اینکه آیا این رود دایتی و این ایران ویجی که گفته شده توی آسیای میانه هست یا نیست چه شواهد تاریخی محکمی وجود داره از لحاظ زمین شناختی هوا شناختی اقلیم شناختی اسطور شناختی زبان شناختی و بقیه مسائل چون از اول هم قراره مونیم بود که تمام اسنادی که منخواام ارائه بدیم از تمام فیلتر ها باید رد بشه و تمام اسناد تاریخی از یکی از این فیلترها نتونه رد بشه ما این اسناد تاریخی رو نمیتونیم قبول بکنیم و در این حال اورو انسانی خب ما دارین بحث میکنیم در موردش علوم انسانی ما چیزی مطلق نداریم اما نمیتونیم بگی مطلقاً رود دایتی همون رود جیهونیه که الان توی آسیا میانه هست یا مثلا یه جای دیگه است یه سری فرضیه هایی داره مطرح میشه فرض فرضیه های تاریخی هستش ما در مورد 5 سال پیش یا 50 سال پیش یا 500 سال پیش بحث نمیکنیم ما در مورد چندین هزار شاید بیش از 18 هزار سال پیشش داریم بحث میکنیم لذا این مباحثی که توی برنامه مطرش رو در قسمت های گذشته کاملا طبیعی هستش پژوهش ها چون ما کار نوی داریم انجام میدیم پژوهش هایی که در این مورد صورت گرفته بسیار کم هستند ولی در عین حال ما با همین بضاعت کمی در که در ایران صورت گرفته و در عین حال اینکه ما سند در مدیگان خیلی زیاد داریم ولی متاسفانه به خاطر اون عادت بدی که در سیستم آکادیک ما شک گرفته و معمولاً دانشجوهای نخبه به سمت تاریخ و باستانشناسی و زبانشناسی نمیان و خیلی کم اتفاق میفته که دانشجویان خیلی نخبه و دانشجویانی که واقعا دنبال علاقه باشن علاقه برای حفظ تاریخ و فرهنگ خودشون باشن خیلی کم به سمت این رشته ها میان لیزه روی این اسناد کار نشده نه اینکه ما سند نداشته باشیم قطعا ما سند خیلی بیشتر داریم قطعا بیشتر مطمئن باشد از مطمئن باشید از مصری‌ها ان بیشتر سند داریم مصری هایی که با دوازده صفحه سند در مورد سینوه دو سه جلد کتاب میدن بیرون و ما چرا نتونیم ما چرا بر اساس اسنادی که در اختیار داریم و چه اسنادی که مکتوب هستند از دوران کوهن هستند و به اضافه مسائل و همچنین شواهدی که در علوم مختلف از شواهد ستاره شناختی، اقلیم شناختی اینها رو با هم دیگه میکس بکنیم و تاریخ واقعی کشورمون رو بتونیم بنویسیم و به قول آقای کریمی این میراث گذشتگان ما که در اختیار بیگانگان هست هر طور شده حتی از دهنشیر هم شده ما بکشیم بیرون و خودمون به غرور ملی خودمون دامن بزنیم و خصوصا در این زمان کنونی که کشور ما نیازه به توسعه داره توسعه با غرور جلو میدم و غرور ملی است که توسعه جلو میدیم ملتی که غرور ملی نداشته باشند و به کشورشون علاقه نداشته باشند اصلا کشورشون نشناسند هرگز برای آبادی اون تلاش نمیکنن و متاسفانه بزرگترین مصیبت ما این است که بسیاری از انسان هایی که در مستر امور الان قرارن قرار نمیدونن ایران چیه؟ نمیدونن ایران کجاست چه تاریخی داره چه در واقع چیزهای بزرگی و زیادی رو به این تمدن جهانی بخشیده. در این قسمت ما ابتدا می‌خوایم از جناب آقای سعید کریمی شروع بکنیم. از پژوهشگران این برنامه از پژوهشگرانی که فرضیه این که رود دایتی در آسیای میانه یا به قول خودشون خراسان بزرگ، خراسان بزرگ که بخشی از ایران بزرگ هستش، قرار داره رو طرفدار این فرضیه هستند. فقط ان هم بالاخره خب حالا درسته رشتهشون مهندسی بود و الان علوم انسانی و زبان شناسی هم میخونند و یکی از همون نخبگانی هستند که با علاقه وارد این رشته شدن نه به خاطر اینکه مثلا حالا برن یه چیزی رو خونده باشن با علاقه باعث مقالات بسیار خوبی رو ارائه دادن و همچنین در این برنامه هم مباحث خیلی خوب و ای رو دنبال کردن ایشون معتقد هستند که این رود دایتی که مکان ایران وج توش هست و دوره جمشید متعلقه به اون زمان و مکان هست معتقدن که این منطقه در آسیای میانه در فرارود و مشخصا در رود جیهون فیلی رودی که الان بهش میگن جیهون حالا در مورد این مواحثم بحث خواهیم کرد از ایشون میخوایم که برنامه رو ایشون شروع بکنن و اسنادی که در برنامه گذشتی نتونستن ارائه بدن در این برنامه ارائه بدن از جنبه های به نام خدا با دورد فرمان خدمت همه همین انان گرامی در سر تا سر گیتی خدمت شما باید عرض کنم که بحث خوبی اشاره کردیم من ندشته اولدم مهندسی برق بود. علت اینکه یباش هاش علاقه پیدا کردم به این تاریخ خب از کلاس است ج آغاز شد. ما رشنا که برق بود. هی خوندیم به مام گفتن نخستیم بار مثلا یونیا اوملا کهروبار رو کش کردند. یو اد 200 مثلا سی سال پیش از میلاد یوهو میرسید با 200 سال پیش گفتین خدای همه چیز با یونانه معله جالب اینجاست که یک بار یکی از استادای کلاس ادبیاتم به ما گفت شما که رشتون برده آیا میرسید نخستین باستان جهان و اشکانیا کشف کردند ما مثلا نمیرسیم اشکانیا کجا بودن فکر می‌کنین اشکانیا پایساسشون خراسان بوده بعدن که رفتم مطالعه کردم دیدم چقد اینا میتونه به ما اعتماد به نفس بده ما ریاضی می‌خوندیم قشن یادم به دبیر ریاضی ما رو به زبان فارسی تمثیل و ریشخند می‌گرفت بعدها فهمیدیم که ای بابا همین واژه هندسه واژه لوزی واژه موازی واژه ساق در و ساق زوزنقه حتی از که زنخ بود به چهار تا دو تا چانه تمام اینا ایرانیه بعد زمان فارصت به تمسخر می گرفتن تمام هی... می گرفتن که بسیار از, از اصطلاحات اصطلاحات عربی بقیدن. هستن ما اصلا هیچ چیزی از خودمون نمی دیدیم گفتیم موقای قبلش که عربیه بعدش هم که اروپایی آدا یونانی یونانیان و رومییانن ما کجای کاریم هیچ جا خب معلومه همیشه این با این دید باز میشه ما بهترین ریاضی داشته باشیم بازی یک نفر دوم باشن نفر اول نیستن شما مینید ما بیشتری مدل های میاریم ولی هیچ نظریه تویش کتاب نداریم درست. چه فیزیک چه شیمیش، چه علوم انسانیش فقط مصرف کننده خیلی خوبی هستیم حالا من کارهای خود نکرده نکردم نمیگم که کم کا کار, کار خیلی سخته بود من به طلابا مثلا در بیارم. ولی ما هیچ متأسفانه نظریه ای نداریم خیلی کم اما مثلا واس بگم فلان کس تو اونا به اسم کشور دیگه صرف میشه اهمیت تاریخ برای همین هم که شما همون که شما فرمودین به خاطر اینکه به ما اعتماد به نفس بده ولی نه اعتماد به نفسی کاذب نه نفس واقعی متاسفان متاسفانه میتونم بگم چندین صد از روشهای گوناگون رو سرکوب کردن هر کسی دستش اومده اینا یه سرکوب کرده حالا اون افراطی یه جور سرکوبش کردن ترک ها یه جور سرکوبش کردن مغول ها یه جور سرکوبش کردن هر کسی به دست چپی ها متاسفانه به اسم روشنفکر که ای کاش نداشتیم ما همین روشنفکراییو نبودشون بسیار بهتر از بودشون بود مار به این گنبه این سیاه‌چال تاریکی بردن همه اینا دست به دست هم داد که ما به این نتیجه رسیدیم که این راهی که داریم میریم راه درستی نیست ما تا نتونیم به گذشته خودمون برگردیم اون نووات مثبتشو به دست بیاریم و ازش استفاده کنیم و از نقاط منفیمون درس بگیریم و دیگه اون نکات رو تکرار نکنیم به هیچ وجه نخواهیم رسید برای همین ما علاقه مندم به تاریخ و وقتی هم رفتم مثلا توقیدم هر چی کتاب می خونم چه باستان شناسی چه هر چی همه برمیگرده زبان شناسی یه حتی مثلا دیکاناف میومد تاریخ می نوشت گزان کتاب می نوشت کتاب می نوشت همش این شما دیاکیت میید بالا هشتاد تا درصد زبانشناسیه. زبان شناسییه همان پر از اشتباهفهم میم شاهگیریدی که ما میتونیم داشته باشیم تو این زنگنده زبانشناسیه و خوش بختن تمام این بلاهایی که سر اسناد ایرانی اومده ولی باز هم اسناد خیلی خوبی در دست داریم خدمت دوستان هستشااعت که شاید ما بقیه دوستان گرامی فرجوش گرامی مثلا حتی مثلا تو حرف همدیگه بیایم بخوایم مثلا از همدیگه ایراد بگیریم همگر رو بخوایم مثلا سرزنش کنیم سر یه قضیه‌ای ولی اینا هیچ کدومشون نواد این واسه بشه که فکر کن مثلا نه بگن خب اینا هم بین خودشون دعوا واس اینا هم خوش می‌نذایی رسن، ای بابا ولش کنید تاریخ بچا دردی می‌خوره هر کی اومد گفت آقا تاریخ بچا دردی میخوره، ای بابا گذشته دیگه چه دردی می‌خوره گذشته رو کن بچسب نمی‌دونم از این حرفا هر که گفت با یه خداوازی خودتون راحت کنید. تاریخ خیلی هم به درد میخوره همین انگلیسی که انگلیسیهایی که با می گفتن تای خش کن نه از فضل پدر تو رو چهاصل که یه ضرون بود که در یک زمان دیگه ای برای یک سیاست دیگه ای برای فرهنگ دیگه گفته شد که هیچ ربطی به امروز نداره رو اومدن رواج شدن ولی خودشون شما ببینید اگه یه پوزه 700 سال پیش پیدا بکنن تو بوگو و کرنا میکنن به ما که میرسه مثل در بچهمان مین ممسفر ما هزار پنج ساله داری در هررسی کهمانشاه هیچ از بجز جز که مثلا باستان شاسی کار کردن یا کسایی مثلا آزاد کار کردن خیلی کم از این اطلاع دارن ده هزار و فونت بله، چند هزار سال قبل از میان رودان ولی شما هنوز تو کتاب میخواد که آسفال در میان رودان مثلا انتشار شده خب این تا کی بعد داشته باشه یه جایی که کات بشه دیگه پس اینکه بین ها اختلاف نظر به وجود میاد یا مثلا سر دامون میاریم بالا تو هر فامیل میاریم از همیه ایراد میگیم اینا همه به خاطر مهره به ایرانه نه به خاطر اینکه خودنمای خودینه خود خودنمای خود چیزی باشه بالاخره هم یکی از حرفو بالاخره به کرسی میشینه دیگه حالا هر کلوم که علمی تر بود طبیعتا سر انجام پیروز خواهد شد بنده همطور تو که گفتم تاریخ ایران ما سه تا بخش میدونن اسطوره بخشی بخش کیش رو یه جور دوره میدونم و اونا رو به هیچ عنوان انسان نمیبینن دشمن اونا تماما اعتباقات طبیعت حالا برن سندشون میخونیم اینا رو بازگو میکنه دور کیانیان که میرسند اینا میشن مردمان و سلسله ها مثلا ایرج نماینده همین ایرانه همین ایرانویجی که ما دریم میگیم در فارسی شده ایرج که شما نگاه میکنید میبینید همین ایرج خودش تشکیل میشه از گودرز و که نماینده گوتی هاست تشکیل میشه از کیکاووس و کشوات که اینا های کاسی ها هستند اینا همه من، درسته به اسم پدر یا پسر میگن آقا پدرش مثلا اسمش فلان بود پسرش اسمش فلان بود حالا من این همه شواهد میارم که حتی ما در تورات هم, هم چیزی چیزیو داشتیم در یونان هم همین چیزی داشتیم بعد اینکه امروز جهان داره میره به سمتی که بیاد اسطوره رو دیگه یه دیگه طور دیگه‌ای بررسی بکنه دیگه مثل قدیم که بیان بگن خب این همون شاهه مثلا خیلی ما داشتیم میگفتن کیخسرو هم کوروشه فلان کس هم فلان الان دیگه اصلا همین چیزی مطرح نیست الان خیلی چیزای مهم‌تر از این مطرحه که من الان رو عرض می‌کنم مثلا یه کتابی هست به نام پیدایش انسان نوشته یوزف راش هولف بهشون قشنگ میاد تاکید میکنه میگه که چقدر مهمه که ما بیایم تاریخ و اسطوره رو با طبیعت مقایسه کنیم حتی میاد تورات رو قشن توضیح میده که اخراج شدن انسان از اون چی بوده اینکه لباس نداشته بعد مجوس لباس کاملا با یافته‌های باستان‌شناسی داره صدق میکنه ولی خب من هنوزم عقیدا بر این هستش که یک سرمایه جمشید به هیچ روی به هیچ عنوان یک سرمایه معمولی نبوده یک سرمایه کاملا شناخته شده از ریخ بندانه. تمام بندها واو به واو شمخانی دارد ما خب توی هفته گذشته رفتیم با بچه های دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی هم بچه های شناسی و هم بچه صحبتایی داشتیم برین شد که با باز شدن واسه ترممل جدید این کارو خیلی گسترهتر انجام بدیم یعنی بچه های زمانششانسی چند دانشگاه مثل علامه شاید بهشتی و دانشگاه تهران با بچه زمینشانسی شاید بهشتی این کار را ادامه بدیم خوشبختانه قدیم آقای دکتر مانیل بربریان با خوندن کتاب آقای دکتر جنیدی که در مورد زندگی و مجاات آریایی بود آشنا شد با قستور ایرانی پیششون بزرگترین درعرضد شانسی جهانه یک کتاب بی نوشتند نوشتن به نام که دقیق خاطر هم نیست کیهان و زمین در ایران وچ ما با دوستان دانشگاه شهید بشتی که صحبت میکردیم یک کتاب به ما معرفی کردن از آقای دکتر آقا نباتی کتابشون الان در تمام دانشگاه ایران تدریس میشه و جزو رفرنس های کاملا شناخته شده است و در جهان همیشون کاملا شناخته شدن جالب که من کتاب ایشون رو نگاه میکردم دیدم حتی ایشون هم بسیاری از حرفاشون رفرنس تنن داره به آقای دکتر مانال بربریان ما دوتا استاد زمینشناس بزرگ داریم خوشبختانه خوشبختانه با اینکه که میگن این سرماه اتفاق افتاده و این از بوده کاملا موافقه این سرماهی که تو ها او تو اصطوره جمشید معتقدن که والا آخرین دوره یخمندار بعد یعنی الان بچهای زبان شناسی دانشگاه شاید بهشتی اون چنته که برخورد داشتیم اینا کاملا فازیر افتند و جالب اینجاست هنوز ما نتونستیم با این ارتباط برقرار بکنیم ما اگه بتونیم من مثلا همین میگم میگم باید با دانشگاه فیزیک با بچهای دانشگاه ریاضی اصلا ما ریاضی الان خدمتتون میگم چه کاربردی داره بعد خدمت شما راست که زمین شناسی اگر بتونیم چیز بکنیم خیلی راحت میتونیم کاری که اونا تو 100 سال کردن تو 5 سال اگه پاسوششونو بدین اصلا کلا عوض کنیم ای سیستمو. به این سیستمو وقتیتری خواهد شد شک نکنید چون اتمان می بینه تو دانشگاه واسه بسیار استقبال کرده اصلا شگفت زده شده از چیزی دیدن گفتن کاملا هم خونی داره باز. واو و و ووابشم خونی داره مثلا قبلش که هنوز هوا گرم یکی از ایران مشکلاتی هستش در آسیه میانه چندین بار و قطب شمال چندین بار از 200000 سال به و تقریبا چهار بار از یخبندان اتفاق افتاده بین همه اینا چند هزار سال فاصله بوده. این زمانی که میگن مثلا همه چیز رامش بخش بوده، اینا بر اون زمان خوب چیزیه که اصل یخبندان قبلی رفته که حالا من تو کتاب داستان ایران خدمتتون میخونم. و دوباره آب و هوا خیلی خوب میشه تو اصل یخبندان بعدی میرس و کوچ به سوی جنوب از همون زمان کیومرس آغاز شده بوده ولی در های بسیار کم که حتی ما اصلا قاره نشین میبینیم هزار سال ما حتی تو پیدا میکنیم. ولی می‌گیم از همون 200 هزار ساله ما الان من کتاب بردن خدمتتون 200 هزار ساله در آسیای میانه پیدا کردیم. آره 200 هزار ساله بله. از انسانهای اولیچه انسانها... نو انسان‌هایی الان من خدمتون می‌خونم چون علامت گذاری کردم داخل کتابش اون اگر دفتر بشم خدمتتون بعد جالب اینجاست که حتی کهن‌ترین سرعت ذوب فلز، کهن‌ترین ابزار سنگی، رام کردن حیوانات بسیار جالبه الان ما مثلا شاید دوستان بگن خب اینا چه فایده ای داره الان تو امروزه میخوان تاریخ بنویسن دیگه نمیگن که فلانی اومد فلانی کش و آش دیگه هیچ ارزشی چندانی نداره الان میان میگن خب مثلا چرا در زبان های آریایی که حالا اینا بهش میگن هند اروپایی واژه سگ برای همشون یکسانه میان به چه نتیجه ای میرسن بله بله بعد میره میره تو زبان های مختلف ساعتم در زبان های شرقی به قول کنتوم در زبان های اروپایی خیلی اینا میاد چیکار میکنه میاد نشون میده که آقا منطقه جغرافی اینا کجا بوده وقتی ما میایم میگیم که شاهنامه داره میگه آقا شما اینا رو افسانه‌ها دروغ نخونید خودش خود فردوسی بزرگوار داره میگه خیلی خنده داره بعد همه میام از تو این 70 ساله همه میام میگم آقا این افسانه از خودش نمیگه افسانه نیست وقتی میاد از رام کردن حیوانات میگه پس من میتونم ثابت کنم با زبان شناسی این زمان برای پیش از جدای آریایی‌هاست چون این واژه از زبان آریایی یکسانه مثلا میام میگم خیلی هم جالبه مثلا سمور و آبی دوستان این دو رو خیلی حمت نظر داشته باشم بعدا براشون میخونم واجاشو سمور و آبی و سگ آبی این دو در نزدیک 37 کشور آریایی زباشون یک ساله نشون میده اون که اینها بودن داره آبهای شیرین بوده اینا شکار میکردن حتی پوستش خرید فروش میکردن و بسیار ارزشمند به خاطر که پیدا کنیم اون منطقه چه آب و هوایی داشته آیا مثلا اون خرسی که ما مثلا مد نظر اون هست که در روسیه تابو شده بش یا میگه میرههشا نکرده باشن یعنی اصل خور کمی خود خص نمیارن به خاطر تابو بودنش چرا این مثلا این حیوان چه آزاری به اینا رسونده که تو همه زبون هاشون وجود داره ولی در اون زبان هایی که ما میدونیم نزدیک ایران به چه شده تابو؟ چون خیلی حمله میکرده ولی وقتی از اینجا کوچ میکنن میرن دیگه اون تابو وشی گسته اما اسم خودش میارن اصل خور ند عسل خور تابوره اصلا نمیخواد بگه خرس مد همون عجیب mascuy هم داستان های چی هم بهش میگه خرس یه حیونی که اصل دوست داره اصل میخوره بعد روسیه بهش میگن پس نشون میده که این یادگار خاطره بده که اینا تو اون زمانی که زندگی میکردن اینا بهشون حمله میکرد زمینای کشاورزیشون روستاهاشون حمله میکرده اونایی که نزدیک ایران ویش موندن اون حالت تابوره رو داشتن اونایی که هرچی دورتر شدن دوباره برگشتن سر هم اسمره آغازینش بله خیلی مسکرم جناب آقای کریمی مباحث خوبی رو مطرح فرمودید و بنیادید جناب آقای ایران گرامی در خدمت شما هستیم خواهش میکنم درود به شما و شنوندگان گرامی و برنامه بله بحث رو همچنان آشاریم ادامه بدیم این بله با اونکه اون که بله چون دو نفر از کارشناسان عزیز نیستن خوصا جناب آقای فیروزی که برخی مباحث در پاسخ به فرضیاتی ایشون هستش مجبوری مباحث دیگه ای رو مطرح. بله من بله. از اونا میگذرم تا خودشون باشن بتونن پاسخ بدن. بله. من یک دو نکتر رو فقط بگم از نشست پیش تا بحث رو آغاز کنیم نشست پیش من مطرح شد این رو شنمنده ها یادشون باشه که درباره جایی که تورج رفت و جایی که ایرج بود بحث شد در اسناد اشاره میشه که در مسیر سبهرگی تورج به شمال خاوری میرود شمال خاوری شمال خاوری می رود اشاره نمیشه که تورج در شمال خاوری می ماند و ایرج می رود اینو از شخص پیش با رو م دقت کنن توجه که حرکت کنه به سمت شمال خاوری نه اینکه تورج خستگاه شمال خاوری باشه تورج بمونه و ایرج برگرده بیاد تو فلات اینو این یک نکته است که دقت کن. از اون گذشته اصلا این چیزی نیست که ما بخوایم این نکته که الان میخوام بگم چیزی نیست که بخوایم اثباتش کنیم اینو دیگه تو باور ایرانی همه میدونن که دیگه جایگاه اهریمن در آپاختر است. یه چیزی همه میدونن دیگه همه میدونن که جایگاه اهریمن در باورهای ایرانی اپ آپاختر است. آپاختر یعنی باختر که جابجا شده در اصل یعنی شمال. آپاختر در ایرانی یعنی شمال. حالا شده باختر که منظور غربه اما در نسخهای کهن منظور شمال که میدونیم که جهنم ایرانی ها زمحریره جهنم ایرانیا از ویژگی ویژیگیاس که جای بسیار سردی بسیار سرد. الان مادر بزرگای ما هنوز یه چیز سردی رو میگن مثل زمهریر زمهریر میمونن. و یک نسخه هست حالا ما چون خیلی شما و دوستان اصرار دارین که اسناد بخونیم من گفتم گفتاره ما چند بخش کردم. من هنوز به بخش خوندن اسناد نرسیدم. دارم ماهیتو بحثو میگم. تو اسناد یک جا هست که اینا به زمانی که از دماوند دارم میرم به سمت به قول خودش تو سند گفته که فکر کنم مینوی خرد دارم میرم به سمت خراسان. میگه ما داریم میریم به سمت خراسان جایی که مرز ایران بجاست بله و های دوزخ در آن قرار دارد. حالا شاید اینطوری تصور بشه که دارن میرن میرسن به مرز ایران وژ که داخل ایران وژ بشن در صورتی که داره سرحدات ایران وژو میگه یعنی وقتی از دماوند دارن میرن به سمت خراسان داره میگه داریم به سرحدات ایران وژ میرسیم به مرز ایران وژ یعنی بعد اون درپهای دوزخ یعنی درپای دوزخ میتونه مثلا جای خوبی باشه برای خاصگاه اونا بودن و زندگی بودن یعنی به جایی که خودشون زندگی میکنن ایران وجه رامش بخشه فلانه میشه بگن درپای دوزخ اونجاست جای اهرمن اونجاست فقط اینو من گفتم دوستان یادشون باشه که این بعد تو خوندن سنادا به کار میاد نمیشه بگیم که ایرانی ها هرگاه در فلات دو چهار میشدن که این آی فیروزی خیلی اشاره میکنن به سوی در هایی دو زخم می رفتند. آیفیزی اول وقت میگه صحبتی تو فردادیجاد بیشتره می رفتند با یا میانه برای که نجات پیدا کنن یعنی می رفتند به سمت در های دوزخ می, رفتن. می, می, رفتن سمت های دوزخ. می رفتن به سمت جایگاه احتمال. اصلا می جور در نمیاد با اندیشه ایرانی جور در نمیاد. در این حال این دو نکته رو من خواستم بگم حالا وارد اصل بحثمون میشیم نشانه های استقرار برای بشر در هر جا. باید شاید این داشته باشه. یک شاهد آزمایش هم خانم کارافته که در قالب پژوهش‌های جهانی ژنتیک بعدا اینو خدای فیروزی هم باشن بحث می‌کنیم که دو نشانگر ژنتیکی ام و ان من... به طور مشخص از شرق آفریقا وارد آسیای غربی میشن از آسیای غربی که حرکت می‌کنن به سمت شرق اروپا شمال فلات ایران و شرق فلات ایران که بعد نشانگرها تفاوت زمانش هم مشخصه اینا اینا هم حالا بعد به جوش می‌خونیم تغییرات جهش های ژنتیکی هم که اینا تبدیل به نشان نرهای دیگه هم میکنه مشخص ما وارد اون بحث ژن مادری R آر و آروان A فرزندش نمیشیم چون آیفیروزی باشن اونو ایشون بگن ما حالا من ژنتیک نخوندم اما پژوهش ژنتیکی کنم بعداً متوجه که اون مشخص میشه یکی نشان‌های انسانشناسیه به این ترتیب نشان استقرار باید بحث بشه نقاشی روی قوار ابزار آلات سکونتگاه‌ها اینا باستان شناسی نیستا اینا انسان شناسیه نقاشی روغار دیوارغار مال 70 هزار سال پیش این انسان این باستان شناسی نیست نشانهای باستان شناسی به طور مشخص وقتی میگیم بعد باشه دیگه مثل شهر سوخته دیلمون ارتاسیلک تپه یحیا حسنلو اینا باستان یعنی باید پیدا بشه پیش سنگش خشتش یک چیزی بالاخره باید پیدا بشه اون چیزی هم که به نام گنجینه آمو یافته شده بله خیلی هم زیباست مونتا اینها مربوط به ایرانویج نیست مربوط به آمو هاست به این وقتی میگن گنجینه آمو اصلا واسه میانه حرف میزنن بله گنجینه آمو داریم خیلی هم یافته های زیبایی ازش پیدا شده خیلی عالیه یکی برسم دستشه یکی هوم داره میفشوره خیلی جالبه مونتا این مال ایران وژ نیست اینو دقت کنیم مال هزارهای اخیره مال آمو هاست به طور مشخص مال آمو هاست اسناد تاریخ روایی را وقتی بررسی کنیم ما که هنوز نرسیدیم به سیامک و فرواک و کیومرس و هوشنگ و تاهور سوینا بعد که بررسی کنیم دونه دونه این شاه‌ها رو این دوره‌ها رو بعد اونجا تو اسناد می‌تونیم بخونیم می‌بینیم که کردارهای هیچ کدوم از اینا در آسیای میانه تعریف نمیشه یا در دماون دارن یک کاری انجام میدن یا تو بابلن یا با دریای پودیک یک سر و کاری دارن که هیچ کدوم اینا تو آسیای نیست. ببینید سقد و مرو زمانه که ما وندیداد می از سوقد و مرو نام میبریم آخه سقد و مرو که دیگه هر باستانشناسی شناسی میدونه که پیشنه ۸۹ هزار ساله ندارن که سوقد و مرو اینو که دیگه باستان از هست هر باستانشناسی در ایران و جهان میتونیم بپرسیم لای های 8۹ هزار ساله ص و مرو ندارن بنده قبول دارم توی اسناد نامشون آمده اول اون اسناد باید ببینیم دارن کوش رو تعریف میکنن یا یه چیز دیگر رو این یک وا لزومن سوق در زمانی که داره وندیداد و جمشیده نام میبره منظورش میتونه اون نباشه چون باید ببینید سوق دو وقتی میگیم باید یک لایه باستانشنلسی 9000 ساله دستگیم توش پیدا کنیم در نداره اما پیشوای ورامین داره جالبه پیشوای ورامین لایه 8000 ساله داره بله ایرج هست بله توکریش باستانی داره لایه 9000 در ساله داره سازه های جنوب ایران ببینید مثلا تمام قلایی که اطراف تهران هست ببینید قلعه ایرج هست همه نام ها ببینید خیلی مشخص آشناست آشناس سازه های جنوب ایران لایه‌های 8900 ساله شوش خودش داره اما در مرو لایه‌های 8900 ساله اینا همه میدونن نداره حالا اگر مرو یه جای دیگه بوده این بعدا جدید ساخته شده دست کم اونو باد ببینید الان دیگه قرن 19 که نیست که بگیم هنوز دره شاه پادشاهان در کاوش نشده که کجا یک در هند و موهنجودارو رو هنوز نگشتیم که الان دیگه الان یعنی جا... حالا ببینید اون سندهای وندیداد و به اضافه‌ی سند مهریهش واقعا نمیدونم نالیده بگیم و به آیا یک احتمالی هست که اصلا چون ما میگیم ما مال 10 15 سال پیشه داریم میگیم یعنی امکانش هست که این نقطه‌ای خارج از اونجا خارج از اون خراسانو بزاره یه مرو سغدی بوده بعد‌ها یه سری انسان‌هایی رفتن اونجا اونجا, را اونجا اصلا میگن. اصلا رو مرو سغدیون دیدن اینو ما نمیتونیم رد کنیم که اگه تحمل کنه نمیتونیم رد کنیم اما کسانی که مدعی با شاهدای دیگه بیارن دستکم نشانه استقرار بشر باید بیارن نشانه ژنتیکی که تعریف بیارم. بیارن ببینید کی میگه وندیداد غلطه نحوه تفسیر وندیداد مهمه ما هنوز می‌بینیم که خیلی ملاحظه می‌کنم که وارد فرگد یکون وندیداد نشم دوستان خانم دکتر احسانی باشن واردش بشیم و توضیح بدیم اصلا فرگد یکون وندیداد بنده خدا چی داره میگه حالا یکی هم که درباره زمانش دیگه ببین مثلا مهریاش تو های فیروزی پژشی کردن من اینجا دارم حالا بزنین خودشون هم باشن زمان سررج و مهریاش مشخصه اصلا به اون زمان ها نمیرسه یک زمانی یکی داره اون, ر... اون داستان ها رو روایت میکنه یعنی همون الهااق که های فیروزی گفتن تو سنع های متاخر میتونه اتفاق بیفته زمینی که ما هنوز هم معتقدم که فرگدهیه کم وندیداد اصلا داستانش یه چیز دیگه است کوچ نیست حالا اگه من یا به قول نزولش اصلا چیزی شنه نزولش هستن چیزی من فقط اکتفا میکنم برای که فرمودین من یک یک خط فقط بخونم ببینید فییلزی ها اینجا چون جلو دستمه میزیشته رو بازی زمانی سه هزار تا پنج هزار پیش از میلاد میدونن بله دقیقه بعد خدمتتون می این به اون خودشون خودشونم نمیخوره هم به زمانی که خود پنج های کریمه نمیخوره بزمان... میدونین ب اون الان اون نیست من فقط ببینید وقتی که صحبت فرگده یکون بندی داد میشه همون نسخهش تو بندهش وقتی که تموم میشه گزارشش مثل فرگده یکون بندی داد میگه این شهرستان ها که یاد شد در ایران شهر نامورترند در ایران شهر نامورتر همین یک تعداد 16 تا شهر رو نام برده میگه این شهرستان ها که یاد شد در ایران شهر نامورترند همین داره گزارش میده شهرستانایی که نظر نویسنده تو مسیر بودن یعنی اصلا هیچ کس نمیگه که این همون مسیر کوچه است ما رفتیم از آن به تریش رسیدیم میگم الان فعلا نمیخوایم عجله کنیم من فقط چون فرمودین گفتم یه نکته دیگه این که بلخ تو اون جایی که نام برده توی اون فرگیده‌کن وندیداد بلخ هم است ما فقط دقیقت هم. کنیم که بلخ تختگاه باستانی خراسانه نمیگم پایتختو تختگاه باستانی خراسان بزرگ در خاور فلات ایرانه هیچ رپتی به شمال و صغد میانه نداره. بخش کاملا این سمته تو نقشه که رو به شمال واسیم سمت راست ماست. تو افغانستانه، در مزار شریفه هیچ رپتی به آسیای میانه نداره. اگه بخت چیزی هم داره مال خودشه. ما اینو نمیتونیم شاهد از بخش بیاریم بگیم تو آسیای میانه مثلا فلان خبر عبد بوده. یک نکته دیگه این که ببینید ما وقتی از رامش بحثی حرف میزنیم، امروز نگاه میکنیم میگیم خب الان فلات ما دچار چه معذلیه؟ خشکی. جای رامش باش کجا میتونه باشه؟ تو که آب بشه دیگه اصلا معزل مردم اون زمانی که ما داریم صحبت می کنیم آب نبوده که اتفاقا هی از سیلاب و اینا و شکایت می شه ای بابا دیگه مردیم چه خبر خبره از این داستانا در یک دوره هاش رامش بخشی در اون دوران هولوژ یخ جای گرمه رامش به هر جا گرمتر باشه رو چرا میگه به سوی نیمروز رفتن به سوی آفتاب به سوی جنوب در نیمکره شمالی هر به سوی جنوب بری گرمتره دیگه بنابراین رامش بخشی به گرم بودن در اون, در اون دوره. زمانی بل. بل. اون موقع صعوبت و سختی درباره سردی بوده میبینیم که احریمن جای سرد شمال درهای دوزخ در شمالن زم حریره به جهنمشون حتی که سرده براشون بده هرچ که گرمه رامش بخش تعریف میشه بنابراین ایرانوج یک جایی باید با, با هوای نمیتونه سرد باشه دیگه جای... یه جایی که در برای اون زمان برای اون زمان باید گرم می‌بود ببینید nil رامش بخش nil عمرام رامش بخش بود الان نرم بخشه بعد از این نرم بخش خواهد بود. نیل یه حالتی داره ببینیم اون جمعیت رو جذب خیلیات خودش، اون تمدن رو به منصی ظهور رسون در های خودش و تا الان هم میبینیم که دیگه جمعیت 80 داد مثل در کرانای نیل، یعنی در رامش بخشی نیل همیشگیه هیچ وقت نمیتونیم بگیم یه موقع رامیش بخش بوده حالا نیست. جای رامش بخش رامش بخشه در نظر انسانها. آسیای میانه حتی برای حکام هم رامش بخش نبود. تمام نقشه هاشون کشیدن که بهدن مصف رو بگیرن هیچ نقشوی برای فتح آ کجا آسییه منر بگیرن اگه خستگاه آخر نمی که بین اخمنششون حالا درسته این حال معتقدن که اخمنششان از چی خبر نداشتن ساسانیان از حنش ها خبر اشتند همج می بافندگه اما ما که میدونیم خبر داشتن که حخواشان اگه میدونستن خاستگاهشون آسیا میانست میرفن ایرانژ دوباره برپا پاها می کردنن درست میکردن تشکلات رو اونجا به اونجا قرار می حتی ولی حخوانش ها نبوده حتی برای اشکانیان که در خاور کاسپی بوده خواهرشون واقعا برای اونام رامش بخش نبوده. میان پایتختشون رو در صد دروازه میسازن ول میکنن میرن کاخ سپید و... و تو تیسفون درست میکنن. پایتخت اشکانیان تیسفونه. میتونستن تو همون خواهر خودشون بگردن بگن ما که اصوره دارن میگن همه بابا ننه اینجا بودن دیگه. یه جایی رو مج... ببینین در ذهنشون رامش تأکید میکنم برای که اسناد ما میگه ایرانویش رامش بخشه تأکید میکنه میگه اینقدر رامش بخشه که اگه من اهور مزدا یک رامش بخشی نصف ونیمه ای به اونجای دیگه نمیدادم همه ول میکردم میامدم به ای رامش. یعنی حتی یک احتمال هم نمیدید موقع یخوندان هم اونجا ایامش بخش باشه؟ موقع یخفنددان موقع یخفنددان که از اونجا خرگوش ها و بزرگ نمیدونن گواووا زنده نمیمونن چه انسان ها اصلا موقع یخفنددان که هیچی من دارم دوره های میان یخبندانی رو تا الان میان, الان میان یخبندانی میان الان دوره یخبندانی میانه چرا همین مردم ول نمی کردن برن اونجا چرا همین مردم جهان ول نمی کردن برن آسیای میانه بله فکر کنم تنها جایی که در واقع جای پرآبی هست مثلا تاجیکستان ازبکستان مثلا مشکل آب داره بله ببینید حتی ما حالا تو بحثام میگم خوش‌شالی شد 3226 میلاد بله خوش‌شالی شد که در آسیای میانه خوش شدن این دو تا کبیر و جمعیت فلاد رفتن کجا رفتن سیندو میان رودن. چرا نرفتن تاجیکستان دیگه واقعا باید. مشکل آب بود. سه هزار دیزی پیش از میاد. اصلا خوشحالی فوق العاده بود بل. چرا نرفتن نسیمیانه؟ چرا رفتن سیندو میان رودن؟ حالا چون دیگه کارشون سه دیگه نیستن. هیز بیدن آیت من دخترانشون باشیم. حالا باز آقای. من باساغی وقت بود دوام میدیم. فردا میانه بیت میگم. دانوها، حخها و آموها هم مثل اشکانیان خواصشون خاور قاسپی بود. اما ما بعد میریم تو هزار آیه دو سه و چار. دانوها، ها و آموها بخش بزرگیشون خاصگاهشون رو ول میکنن و به سمت باختر میرن. ببینید اینا دنباله تورج بودن، دنباله تورها بودن. در اونجا مستقر شده بودن به هر حال. اما حتی اونها هم برای اینکه تو دورهای کوچهای بزرگ ول میکنن و به سمت باختر جای بهتری پیدا کنن. حالا اونجا هنوز هم رو میمونن، هنوزم آدمای اونجا هستن. اما اون رامش بخش که تو اسطوره ما شده، جای دیگه‌ایه. چون جا نمیتونه از نظر شما جای رامش بخشی باشه. بله. خیلی متشکرم. همین بحث رو ادامه بدیم دلایل شما این که اونجا جای رامش بخشی بوده و از لحاظ اسطوره ها چه دلایلی دارید چه دلایل متقن تاریخی دارید حالا برای برنامه هم حدود 8 دقیقه 9 دقیقه ما فرصت داریم تا پایان برنامه حالا طرح بحث بکنید امید خدا نشود برای برنامه بعدی حالا بقیه کارشناسان امیدواریم باشن و بحث داغ‌تر بشه خواهش می‌کنم من دوره می‌خوام با زام شروع کنم ببینید اهریمن از روشه انگ, را... روش انگ و انگ وعنی خم کردنه انگ را معینیو یعنی خم کننده کاهنده بعدها اومده به این شکلی که مثلا ما با دیوین سامی که برخورد پیدا کردیم اومده شکلی به نام شیطان گرفته و یعنی احریمن اگر نباشه از جهان هستی چرخش نداره باید اهریمن باشه تا جهان حسیا چرخش پیدا بکنه دو تا نیروی مخالف هم داشته باشه مثلا مهندسش بگم مثل دو تا گشتاور میخواد بشه باید از یک از روی یک محور با دو تا نیروی 180 درجه داشته ای داشته باشه آ این ریشه در همون تنویت نداره مثلا روز یا شب نباشه مثلا روز معنا پیدا دور بر شما دقیقاً همینه اینکه که اسنادی که دوستام فرمودن همش مال هزار هخامنشا اصلا پیش اونها معاصره پیش هزار سال پیش از هخامشا منه بل از اسره دیگه میشه ببینید در مورد افزوده ها خب الان ما میگیم ده تا سراد میاریم دادگاه میگن آقا کدوم سراد برتره هر خیردی هر عدالتی حکم میکنه که كهنترینه دست نخورده تره ما زمانی میتونیم بگیم که افسوده است یا الحاقات که یه دونه از اون داشته باشیم تا زمانی که یه دونه از اون كهنتر نداریم نمیتونیم بگیم آقا اون كهنترینه برای ما سند مسجله خب ما قرارش از روشه گوناگون بریم خب اینکه ایران ویچی که معرفی میکنه وندیداد و مهیش در اینکه در آسیه میان هست یه شکی نیست یه خونده شده اشترایه که دوستانمون عزیزمون میگه اینکه وندیداد کجاش شکی نیست بر وندیداد هیچ شکی نداریم و به اسمهای شهر که میاره برای از ایران ویچی که نخواست این میگه صغد میگه خب ما که هنوز فرقیده یک کنوندی داد بس نکردیم که اصلا... شب ما که شک داریم شاید شما شک نداشته باشین نه نه خب ما نه تنها شک داریم بعد که مطمئنیم که اونجا نیست حتی از روی فرقیده یک کنوندی داد خب ما میره... نظر خودتون بگیم میرسیم به اونجا من وضع خودم دارم میگم نگاه خودتون نگاه خودتون اینشون اونجا خب من به این واسطه در شما نمیدونم من خیلی نه نه این داشت. که واسطه حرف شما اومدم نمیدادم این داستانیه که چند سال اصلاح طلبا را انداختن توی مناظره دیگه نه دیگه سنبای. شما بیان من بارها گفتم شما 50 هزار بدم واسطه حرف شما بعد ما هم کارم ندارم میگم بعد اشتباه فاحشی که میکنید الان من خدمت شما میخونم بندیداد میگه من اهورامزه البته تاخه در من در بهترین جاها و شهرهایی که آفرین نخص ایرانویج است که دارنده وحرود است هم دایتیه اما اهریمن کهنده در آنجا مار بزرگ و سرمایه دیو داده را پدید آورد این داستانی که داره میگه این سرمایه که ما داریم میگیم مار پیش از عصر یخبندان اونجا هم چه و هوایی داشته نه پس از عصر یخبندان اصلا پس از عصر یخبندان ما تماس سردشو مییاریم اصلا بعضی از زمینا بواسطه اصلا خوش‌صالی شده به خاطر که آبها بخار نمی شدن و این کاهش بارندگی برای از اصیح اخماندان یه سری از زمین ها اصلا رفته سمت خوشحالی. این تو اینجاش اینکه ایران بهش نمی دونم رامش بخش نبوده فلان نه اصلا همچیزی نیست همچین اتفاقی کاملا افتاده ما گفتم خدمت مواجه زمشانسی وانا همه هم را سرش خایم آورد کاملا ات واقعا جای خوش هو و هوایی بوده بعد از خود ونداد داریمره میگه میگه اینجوری بود تا اهریمن دیو... میگه آنجا که مار بزرگ و ما گفتیم آسییه میانه جای رامش بخشی نیست ما نگفتیم ایران وج راامش بخش نیست, نیست. ایرانویج کاملا رامش بخش بوده ما هم مختصات مختصد رامش بخشی با آثیه میانه نمیخوره شما دارید می نه نهشون میفرمایند که ایران وج جای رامش بخشی بودی شکیشنی ولی یشم معتقدم این که شما می فرماید تو آسیایی میانست خب، تو از اون باعث زمانی نمیتونه اونجا رامش بخش باشه. که میتونه بگه کدوم سند گفته کدوم ساعت لودن؟ گردن پوندزیز از سال پیش بسیم ما گن که آغاز اونجا رفش نداشت. آدمای پوندزیز سال پیش بگن فلان کاتی برو نمی‌بینم. سند مزورتون چیه؟ نفهمم. سید که الان من خدمتون نشون میدم. خب حالا من که اونو به سید حواشیانسی آغاز یکی اینکه یه کتابی هست به فرنگ شاهنامه نام, نام کسان و جایها نوشته حسین شهیدی مازندرانی. تو تمام دنیا آقا معروفه هر هم بخواد میتونه بکنه. دوستان میتونن رامش مخصوصنا تمام شهرهایی که اونجا اومد از سخت و مرو و بخارا ببینید سفرنامه نویسها حتی در اون بدترین موقعیتش در پونزه هزار سال پیش؟ نه هم که چیزی که شما الان دارد میگید من چی میگم؟ شما شو... بگو پونزه سو... هزار سال پیش همید همید یه بخون که رمش برش بوده نبوده. دوزار سال پیش هم جیری نبوده من دارم به شما میگم اون زمانی که حتی خوش سالی بوده تو فرات ایران اونجا بهتر بوده من میگم 5000 سال پیش ها ایران و جرامش بخش در اونجا با آب هواش نمیخونه. الان من شما فهمودین که هیچ سردی اونجا نیست. من خدمت شما عرض کرد که کتاب باستان شناسی آسیه مرکزی از آرین سنگی تا اصر آهن نوشته فیلیپ کوهل ترجمه حسین رمضانپور و همکاری با بانو مرادیان. من چون زیاده صفاتش میگم فعلا. عمروی هزار محوطه باستانی بر 15 و 6000 پیش از میلاد پیدا شده. روی محفطه باستانیه ایران بجن آسیای میانه نه میخوام اینو ببینم ایران بجن همه اون منطقه‌ای نه, نه نه ایران ایران بزن. بزن. نه سازه های ایران بجن سازه های نه نه نه شما گفتید اونجا پیدا نشده من دارم میگم چیزا پیدا شده حالا بذارید ببینید شما, شما تفسیر به رأی میکنید نه نه نه خانم دکتر آزاد هستانی از اشتباه اگر نگفت باشه از ماندالای هفت گفتن که در سنگسیت اونماری که در سرزمین ایران آنا گفته میشده حالا من خدمت شما به بسیار خوبی میخونم واسه میارم. همین کتاب روی 109 من میخوام به چقدر دوستان اشتباه میکنم میگه شاید هیچ دوره تاریخی در توالی آسیای مرکزی اثرارامسته از دوره آنوی آی ای پایان هزاره ششم و آغاز هزاره قبل از میلاد نباشد شرحی جزئی پیرامون پیچلگاه دوره آنوی آی ای وجود دارد که تاریخی شده است اگرچه سوفالونای آنول از یک سایت های توسط آقای فلانی مثلا در حال من بتون بخونمش در دهه سی جماوری شد اما این مواد منتشر نشد تا مدت ها مواد آنای ای محدود به تفاوت اصلی تپشان آنو و آرزه اتفاقی پنداشته میشد این این صادق میگه کجاست دقیقاً دقیقاً, دقیقا, دقیقا, دقیقا این کجاست در این در آسیای مرکزی گفته بود من دقیقاً کجاست آسیای مرکزی و هوکستان غربی هوکستان غربی بله بل چی میگه منظورشونه نه نه شرغیش میشه سمت چین وقستان غربی مثلا تو اینا تو کجا رفتن حالا ما میگیم تو کجاها من دقیقاً از باشه بله اصلا بعد همون آنویی که تو می خوام دکتر درس خوندن درس آنو سومر هم هست از بله از اینجا رفتن سمت اونجا که من تو اون برنامه اون خدمتتون گفتم که اینا زر... سرد اینا انا گفته میشد در زبان سومری بعد خدمتشو اثرت که این ادامه میده و میگه همینطور عدم وجود فلسفات در طبقات آنوی توسط پومپلی کاوش شد اول که میگه آقا مخفی مخوی نگردوشتن یه شروعی أشردن دوم میگه همه مخفی اما روس ها که حالا بعدم آخرش توضیح میده که مارکسیستی چجوری بیچاره کرد آسیا مینا نه رو قشنگ توضیح میده یعنی مثلا اندازه شهر سوخته ما میشد خب من قشنگ واسهتون میخونم که کاملا میگه که آقا اصلا در اونجا اولا مثلا رو در نیبردن بعد فونیستا بعید نیست بعد که یواشهاش لو رفت گفتن آقا اینجا اس عادی بوده فلز نداشته بعد گفت آقا بعداً پیدا کردن تقریبا فلز به صورت بسیار بالا کاربرد داشته بعد خدمت شما هرچقدر که همون خدمتتون عرض کردم نقشه ها داره سر روی 217 200 همینا رو به پایان هستش بله قبول برای 7000 سال پیشم قبول ولی بله آیا سند هواشناختی باب اقلیم هواشناسی میبینید اسخان میگن برای برنامه آینده من هم. از الان در واقع پیشونده میگن عزیز قور میذم سند هواشناسی شما داری که اونجا 15000 سال افت شما فرض دوره جمشید رو 17 الی 15000 15 سال پیش میدید شنوندگان گرامی قسمت 26مین برنامه رو پایان هست شما رو تا آغاز قسمت 27م به خداوند متعال سپرد